یکی از مشکلاتی که امروز دامنگیر بسیاری از مسلمانا هست ای هست که بسیاری وقتا بعضیها هستن که مثلا سجده ب غیر از خداوند میکنن بعضی کسا هستن که مثلا بسیار تعظیم میکنن بر کسایی که ب غیر از خداوند و بعضی کسا هستن که ب غیر از خداوند دست دعا به جاهای دیگه بالا میکنن موضوع در سمروزی را ما در باره عبادت ای عبادت مخصوص خداوند مطال جل جل ای را گرفتیم و در اینجا دو سوال مطرح میکنیم یک سوالی که تمامی پیغمبران ها امت های خدا به چی دعوت میکردن و سوال دوم ای جواب خود میگم که عبادت چی هست؟ و کدام کارها جایز نیست که ما غیر از خداوند و کس دیگه انجام بدیم به این قسمت که عبادت بر کی هست اگر ما تمام آیات قرآن زیمانشان باز کنیم و بخانیم میبینیم که تمام امتها تمام پیغمبرها و تمام آیاتی که خدای عزواجل بر حضرت پیغمبر سلام واسیت کرده و ما و شما را درس دادن که ازی باید استفاده بکنیم به بادت مخصوص خدای عزواجل ساخته است در سوره بقره آیات بیستی اکم خداوند متعال جل جلوه همه یکی یا ایوه ناس عبود ربکم اللذی خلقکم ای مردم شما عبادت بکنین پروردگارتان را که شما را خلق کرده و لذین من قبلكم و کسانی که قبل از شما بود اونا را خلق کرده بنان این جمعه شما عبادت فقط و پروردگارتان بکنین و دعایت آیت شریف دیگه که در سورین نساء آیه 36 مشخص است در اینجا هم میگه که الله ولا تشرکو بهی شیئا شما الله تعالی را عبادت کنین و کسر به خداوند شریک نسازین یعنی در عبادت خداوند کسرا شریک نسازین عبادت فقط به الله تعالی بکنین و کسر در عبادت خداوند شریک نسازین در و بقیره در آیت اشتاد و میگه و اخذنا بنی اسرائیل خداوند متعالمه که ما میساق بنی اسرائیل پایمان از بنی اسرائیل گرفتیم که لا تعبدون الا الله عبادت نکنین مگر الله تعالی را میساق و پایمان از یا نخصین که از اینا گرفته شد پایمانی بود که خداوند از پیش از اینا گرفتن ای بود که شما غیر از الله کس دیگر عبادت نکنین برادران مشرکین مشکلشان که ته پیغمبر نبود که خدا را نمیشناختند شما اگر قرآن از مشانه در درباره مشرکین میگه که مشرکا خدا را میشناختند این انسان ته من خلق السماوات والارض صفات مشرکین انسان مشرکه در قرآن شریف میشناسه چرا خداوند مشرکین بر ما بیان کرده صفاتشان گفته که اینم ویروس است شما ای ویروس ها را بشناسید چرا اونام کامپیوترهایشان ویروسی بود نامشان چرا مشترک شده بود به خاطر ازی که اینی صفات داشن ولی ان من خلق السماوات والارض میگاس ابو جهل و ابو لهب پرسال میکرد که آسمان زمین کی خلق کرده لا یقولن الله میفتن الله خلق کرده خیلی مشرکین این را میگه بله میفهمی خدا را مشراختن خیلی مشکل مشرکین چی بود مشکل مشرکین بود که در عبادت خداون اشخاص هم شریک میساختن یعنی هم نماز خدا بر خدا میخوان نظر خدا بر کی میبرد بر هوبل قربانی خدا بر کی میبورد بر لات دعای خدا با قابل کی میکد؟ دست خدا بالا میکد برمنات چرا بیلاتو برمنات ایبادت میکنی؟ نفیاد دوستای خدا هستن یا دوستای خدا بودن شخصیت های بزرگوار بودن پیش خداون مردم های بسیار نامدار بودن از این خاطر ما میرم پیش از این و اینا بر ما به خداون ما رو نزدیک میسازن ما نعبودهم الا لیقربونا الله زلفا ما مخ عبادت نمیکنه مگه به خاطر چی خیر عبادت میکنی چرا پیشان میری به فیاد دوستای خداست ما را به خداوند نزدیک میسازم. اینا کسی که این گپا و جملات از یار میگه اینان بعضی اشخاص هستن که اونم کلماتی که مشرکین قریش میگفتن در عصر حاضر اونم کلماته میگه اون تو جملاته میگه از جمله که او میگفت و قرآن کسی کرده اما تو فکس جرمه مشریکی که قریشی بود که کته پیغمبر سلام در مقابل پیغمبر صلی الله علیه شمشیر گرفت با پیغمبر صلی و از خانیش کشید و پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجبور ساخت که ترک منطقی خدا بکنه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرام بسیاریشان رو شهید کردن دندان‌های پیغمبر را شکستاندن اونمو گپ بکنه و مشرک میزد امروز کسی که باز میگه محمد دوست دارم محمد سلام را دوست است محبوب است و باز عین گپ جملات ازورا تکرار میکنن چرا پیش بطا خدا را مشناسی؟ بله مشناسم خیلی چرا پیش اشخاص میری سجنه میکنین؟ میگه یا بند آی نزدیک خداوند بودن لیو قربون ایلالله یا ما را به خدا نزدیک میسازن شما نمیمانین که قال مشکین قرائش همه میگن پن میزدند. حال قرآن برای چی از اقیده خود از کجای بیایم؟ برادرها اقیده از فلسفه گرفته نمیشه. کس که السفه... السفه... السفه... السفه... السفه... از فلسفه اقیده خود رو جور میکنه تاوحیم موحید شده نمیتونه. کس که از منطق علم منطق میخواد نمیگم من موحید میشیم موحد شده نمیتونه. کسی که از قصایب و باكلانه خود میخواد یک موحید شو و مو مومات که با باكلانه خودش بیشتر مشکل داره. خیلی ما چی قسم خودم موحید بسازیم. یه ن بخوام که مشان باری مشرکین چی میگم خود خداوند میگه وعد اخذ میثاق بنی اسرائیل ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم لا تعبدون عبادت نکنین الا الله و غیر ذات الله جل جلاله پس از برای یک مسلمان قرآن خوان با ایمان این آیت قرآن بخوان با ایمان به عمل بکنه لا تعبدون ما عبادت نمیکنیم الا الله و غیر ذات الله جل جلاله هر ماوردی یعقوب علیه السلام که پیغمبر خدا بود، آقای قصه پیغمبر را خبر نیست که ما ولی قصایش هم بخیزیم و که یعقوب علیه السلام می گفت که نه قصه یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، ابراهیم علیه السلام برزی است که شما ببینید که اینی مردمای موحد و یکتا پرست بودن چی صفت داشتن، چی می چی نصیحت میکردن کردند، گپای بگیرین، بگیرند، یه ترزل عمل زندگیتان بسازین خط مشی زندگیتان بسازن. چی می یعقوب علیه السلام؟ بر ما میکنن میگه ہم کنتم شهدا حضر یعقوب الموت شما حاضر بودن که وقتی که یعقوب علی السلام برش مرگ نزدیک شد شما حاضر نبودن نه خیلی وان میگه من براتون قصه اش میگم یاد بگیرین چی گفت ام لبنیه وقتی که گفت بر پسران خود چی گفت برای بچهای خود ما تعبودون من بعدی ای بچهای ما ای اولادای ما بعد از ما عبادت کی راه میکنین دواو دسته دوارا برای کی بالا میکنین سجده برای کی میکنین رکوع برای کی میکنین سرت برای کی خم میکنی ده زمین سرت برای کی میمانی ما تعبودونم این بعدی اس پیش بچهای خود اولادای خود ازت یعقوب علیه السلام وقتی که فوت میکنه نزدیک مرگش از جان کندنش از اولادای خود را جمع میکنه سر چی فیصله میکنه بر شان ما تعبودونم این بعدی پیغمبر رو پ نمی ماندن پیغمبرو میراس شد پیسه نبود خانه نبود که بیاین بچه هاییم جمع شد زمین دی بالا از تو اینه زمین دی پایان از تو این زمین, زمین که آبش کم از سی از نواسیم این چای عوکی از تو این چای برقی که هست از تو نه یه گفا نداشت جمع کرد بچه های میراث میراس پیغمبرو چی بود؟ توحید بود میراست پیغمبره علم است شناخت خداوند است ما تعبدون من بعدی بچه هم بعد از مکی را عبادت میکنن؟ از پیشان پیمان میگیرن. اتا نشه که کسی بگه که اولا میرم پیش فلانی دوست خداوند بردو سجره کده میرم سر خدا خم میکنم میرم بر فلانی تعظیم میکنم صبح مسلمان سبحان عربی العظیم رو که میکنم. میکنه به ذات الله جل جلوه جل میکنم ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد قالوا خب ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك گفتن پدر عبادت میکنیم خدای واحد ترا و الوه ابائك و خدای پدرانتان را یعنی خدای ابراهیم علیه السلام و خدای اسماعیل علیه السلام و خدای اسحاق علیه السلام الها واحدا خدای یگانه و نحن له مسلمون و مو وزات الله جل جلوجی هستیم تسلیم هستیم ما مسلمان هستیم دیگر دین خدا رو نمی کرده دین شاه خلیل اسلام، ابراهیم الله السلام، اسماعیل است. دینشان اسلام بود. اگه کس بگه ایسال الله السلام مسیحی بود کافر میشه. او برادر مسیحی میگه که خدا بچه خداست. ایسال الله السلام نمیگفته یه برادر. ایسال الله السلام مسیحی نبود. بود. ایسال الله السلام مسلمانی یک توپ پرست بود. بیایم مرسی سلام چی میگف؟ ان الله ربي و ربكم فعبدوه. این مستقیم. خدا بیایم مرسی مبرمادم چی که؟ الله رب ما هست و رب شماست فعبدوه. الله بکنین. صراط مستقیم. هر روز دنیا میخند. اهدي ن سیراط المستقیم چیز المستقیم؟ آیت قرآن بر میگه سوره آل امران جس راه المستقيم يا رب چرا در نمازهای خود ما زیاد میگیم که اهدنا صراط المستقیم آه ما مسلمان استیم این یعنی در رای مستقیم روان هستیم ما چرا خداوند در وقت برای ما توصیه میکنه که شما در کل نمازهایتان بگن اهدنا صراط المستقیم خدای ما را برای راه راست دید که کن خدای ما میگه به خاطر از این که بسیاری کسا وقتی در رای مستقیم میری رفتن در رای مستقیم در راگکای دیگه است که شیطانا شیشه او شیطان تنیم راضی دست کش میکنه به اینجا از تک در یک سرک و این طرف سرک های دیگه است در سر هر سرک یک شیطان چشته کشت میکنه بیا قوم پرستی بکن تو دفاع از مردم قوم خودا چقدر خوش دارا. تو قومت خوش نداری؟ قوم پرستی بکن شیطان دیگه مگه سمت پرستی بکن شیطان دیگه بیا زبان پرستی بکن شیطان دیگه برد که بیا, بیا برو ماش یک هزار آشک هزار دلاره بگی تیل بوبر بر امریکایی بیا وقتش وقتشه، نمیاله که نخوری باز، چرا وقت میگیری باز؟ که آمریکایا رفتی فرصت از دست میدی. در سر هر سرک یک شیطان شه. از این خاطر مسلمان همیشه دعا کنه که یا رب هدیناس صراط مستقیم خدایا در زمان فتنه، تلویزیون شیطان، رئیس های تلویزیون اکثریتشان اگر 5% ش... شیطان نباشه 95% شیطان، خ... یا پروردگارا که تو من در راه مستقیم نگاه کنی. این قوم پرستارا چطور کنیم؟ بچی کاکایم قوم, قوم پرست، ایش صاحب به طرف شوین خواکش میکنه او دیگهش به طرف تاجیکش کش میکنه او دیگهش به طرف ازارا کش میکنه تلویزیون به رقص ها ما میکنه اینترنت که چالان میکنیم وقت نصفی اولش عکس زن لوچ اومده یا رب اهدنا مستقیم المستقیم خدایا مرا به راه راست هدایت بکنی به خاطر ازی که انما الاعمال بالخواتیم اعمال انسان به خاتم از یک نفر خوب اعمال نیک کرد کرد کرد کرد کرد یک دفعه خدا شرمانش رفع غلام آمریکایی شد سلطان غزنوی که هزاران غلام داشت عشقش چنام نمود که غلام غلام شد فلانی نفر سر که بسیار قمندان بود عشق دالرش چنام نمود که غلام غلام شد ها؟ چرا میگه ناچی میری بل که پیسمه لگم به حساب انسان مسلمان چی میگه؟ اهدن سراط المستقیم یا الله مرا را در راه راست هدایت کنی هدایت با قفتوار باشم در غیر از دو هر را می کشنن و اینجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بر ما چی میگه؟ رای مستقیم است که بگه این الله ربی و ربکم فعبدو هذا در سراط المستقیم بسیاری کساس حتی نام اسلام نام مسلمان نام رهبر مسلمان خاطر از این که من مسلمان هستم مردم میگه نه نه نه بین برای عبادت کنین بمست اجوره کنین پرد این خدا کشت کنین خدا پیجوره ای من تو خیلی چی میگه ای،, ای،, ای،, ای کپنت چی میگه نه تو بخی یک پرتو یا ریش صفحه دا ای ریش صفحه ای ص برای ما روشا دادن ا ریش صفحه سرقدر ریشش لونگی هم در سرش سرب داتا می پرته مرک گفت این ریش صفحه بسیار با تققااص دیث بچگ های خدا پیش و کندوزی دیر کرده حالا که پیر شد آمده اینجا پیش به نام دین میرقصه دین در کدام دی است؟, دین است؟ کدار صحابی؟ کدار صحابی صلی الله علیه پیر که که از پیس نامیدیش خاله ما چیز خدا تقدیر داده والا یه حرف سرعت المستقیم خب بعدا مرسه خدا خداوند متعال میگه در سوریه الان اینا الله ربي و ربكم فاعبدوه هاذا سرعت مستقیم اگر راهی راست برسان میکنی بعدا میگی راهی راست کجاست د قرآن است مشان است ای که بودی الله هم خدای تو هم خدای ماست اما ام به الله سجده میکنم ام تو سجده کو دست مراموش نکو سر مراموش نکو برای من خدا خم نگو من به خداوند سجده می تو هم به خدا سجده کن حضرت محمد صلی الله علیه و سلام به شرح حدیث شریف بخات وم سجده میکند و بعد پالوش حضرت ابن عباس اشادت که تو هم سجده کو بلا وقتی می سجده مام سجده خدا را میگم تو هم خدا ها در سرات مستقیب یعنی راه راست پیغمبر صلی سلام علیه و میگه حتی اهل کتاب برای مسیحیا بو که او پاپ او یهودی او فلانی کیسی که هستی بهتر ولاگه خود مردم فریب بیتی بازی بیتی دروغ بیتی دی با تلویزیون همه رئیس یگان تا کشیش صاحب سایه کلی ریشش 1 متر صاحب لنگی خوب سیازده و چاپان زده و ها باز باز میخزه پیش یک بو تجور کرده که بو تیسا علی السلام است. امرخ کلا میپوشونی ظالم جان ام بود عیسی علیه السلام او چا میکارک جور رجور کردن و رسد به جوردان در کلیسا مانده و صاحب تمام روز یک دانه چیرک اسپندی دزشان است اسپندی کدمیره مو متروانای ما کلشان از مسییا یاد گرفتن سوبه کی یگان تا نفرای بیکاره و عاطل و باطلی که در کشور جون آدم هست بی غیرت وازی جوان بی غیرت که دیگه کار کردن نمیتونی رسد به چاره کوتی سنگی یک روز رفتن ساجوان بچه سین قپون دیده رسد دیگه بینم قتی چیزا نسوار آدمی چیر انداخت اسپنده یه نیمی سایم سپند بلا بند کرده می روزید دزیر از او گرد گرد میکرد و این کارها رو ما سایم در کلیسای مسیحی دیدیم که میکردن در اسلام اسپند است و پدرمون بوی سپند نالت. در اسلام اس بند اس بند بازی نیسی اسلام دین پاک صفا نظیف بروزوکو، وضو غسل کو بیا نماز نماز نماز نماز بخوان صاحب خود دیگه کا دور می دی دور می دور می دی گرد،, گرد گرد از دو دود انداختن دود انداختن رو رو خدا از میسپنجی رکسلووش دیدن نمیشه سی اگ هفته سری خود نشوشته جون آدم است برو وضو غسل کو نماز بخوان دیگه کار نداره اینی پیسه از این چیز کو این حال این چه خداوند متعال برای پیغمبر برسم. چی میگن؟ قل یا اهل الكتاب باشه بگو ای مردم اهل کتاب که شما میگن ما کتاب داریم تعالوا الى کلمت سو بین بیننا و بینکم همین یک کلمه جمعشان که ان برای شما و برای ما و بر کل چی اس مساوی است الله نعبد الا الله که عبادت نکنی به غیر از ذات الله جل جلاله خود ما محمد پیغمبر خداستم عیسی <سؤال> <تصال> علیه السلام هم پیامبری خدا بود او هم الله را عبادت می‌کرد ما هم الا را الله عبادت میکنم نه امت ما بخیزه عبادت مرا رو بکن نه شما بخیزن عیسی علیه السلام را عبادت الله نعبود الا الله كل ما عبادتی کلیم میکنیم عبادت الله میکنیم ولانو شریک به شایان و به خداوند کسر شریک نمیسازیم. اگر کدام کاری که پسان و برترن میوم که عبادت است، ایر بر یک مخلوق کردی، اون مخلوق رو کهت خداوند در عبادت شریک ساختی، در عبادت رو شریک ساختی. ولای اتخاذ بعضنا بعضن ارباب من دون الله. یکی دیگه خدا، غیر از خداوند رب خود نگیره نه تو پیغمبر خدا بگی نه ما پیغمبر خدا میگیریم ما؟, ما میگیم اشهدو انم محمد عبده و رسوله شهادت میتیم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده خدا بود و رسول خدا بود او روز کسی میگه چه تو پیغمبر چیز کرده نمیتونه پیغمبر هر چیز کرده میتونه؟ قرآن نمیتانه اگه قرآن بخونه میفهمه که خداوند برای پیغمبر چی میگه؟ امی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تا 313 نفر صحابی مبارک وقتی که در غزوه بدر رفتن و اونجا ملائکه آمدن کتسان کمک کردن مسلمان ها دیدن که ما زدیم یک هزار کافر دواندیم هفتاد نفرشان از زخمی گرفتیم هفتاد نفر دیگه... اسیر گرفتیم هفتاد نفر دیگه شان مردار شدن قراشی ها گریختند خسین پیروزی مسلمان ها بود مسلمان ها بسیار خوشحال بودند عزرت جیبرایل علیه السلام آمد بر پیغنبشت هم گفت و اما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ای محمد صلی الله علیه و این زدن زدن تو نبود اگر نیت تو کتی 313 نفرت آجز و بیچاره که سلام نداشت و مهماتم نداشت و امکاناتم نداشت زدن زدن شما نبود ولیکن الله حرما زدن زدن خدا بود که میدیدن که یک آن تا هستم که کافر هفتاده کمیت شمشیر این فرقش خوردن تا شست پای دو توته شده این انسان میتونه این کار را بکنن زدن ملایکه های خداوندی بود کردن شمشیر کمید شیطان تا موجه رحبری لشکر کفار میکرد وقتی که دید غریخ کجا شیطان کجا میگوری گفت چم چم که من می بینم شما دیدن نمیتونین انی ارى ما لا شیطان گفت شما خ دیدن سه هزار ملائکه آمد او که نمی رسو شیطان غریخ و هو یدرب شیطان بوگرس کلامی رسو غریخ اگر توامو لحظه رهبری میکرد که سید ذات از حضرت خداوند متعال گفت که و ما رمیتم امحمس صلی الله علیه و زدن زدن تو نبود ولیکن الله رما خداوند اینا رزه تو ایمان قوی بساز یک کسی میگه ولدم می افغانستان و در عراق چرا ملاکای خداوند کمک نمیکنه او 313 نفر چه قسم مردم بودن که خداوند با کومک آمده تو به خوی از او میمانه تو خود مثل اصحاب بدر بساز ببینی که کومک ملاکای خداوند میهی نمیهی چی؟ گر نداری غیرت افغانیم چون به بگرام آمدی؟ آمین. داریم باشم افغانستان در ندارن، داره میاد در دا روز کریسمس باز, باز می باز میاد دنیا. یاداپل چه خبرو؟ دو ماسیا ایشاف که دخترای افغانی کار میکنن. در ندارن ایرادی افغانیه، در دخترای ایشاف کامدی، دا موساد کامدی، باز میاد دنیا. برای قسم سمنصور خداوند کمک میکنه، کمک خداوند و خوناک سای که. می که کل وجود ما و زندگی ما این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله برد العالمین. کلش از خدا وقتی که تو از خدا شدی باز خدا از تو میشه. شد فذکرونی اذکركم شما مره یاد کنین دارسی خود خدا رو یاد میکنه دارسی خاص گل زمان عوال می یاد میکنه باز خدا مره یاد میکنه تا که دو مرده مرده باز ما بگیم خالی سبیه قرآن شریف بخون خب در مورد مشرکین چی میگن؟ میگن و یعبدون من دون الله ما لا یدرهم ولا ینفعهم عادت مشرکین میگه چیست؟ اینا عبادت میکنن نظر میکنن غیر از خدا و کس دیگر این نظر از تو این قربانی بر تو این دعا بر تو و عبونم میدونله مالا یفه هم لا یا دور هم حالفه او کسان عبادت میکنن نبرش نفا میرسن و نبرش ذرد میدارره برسانه ما خدا سرگردان میکنه هن خدای ناراز یا پختتو مطله و این دوست دا اوندوی خدای ناراز خدا من هم از بشین نار است مشرل خدای ناراز. تمام روز خیزک زده برو خدای پاک نارست چرا که چیزی که خدا میخوای دوره نکردی یعنی انسان شده در خدای پاک عبادت کهی دست عبادت تو که چه خدای ورتبایی دست عبادت دونه که چه, چه مثلا مظلق واری در نظر میده تا د قرباری میده تا د پارکه هم زبا جارو کم زیارتونه شنکی بابا کمی قبول که دا سوالونه در خود شخصو بچه تا زیارتونه به طور ظلفو جارو کهی؟ بابا که می قبول کهی؟ دستوالونه سوال الله قبول میکنه یا شنکی بابا؟ ازي خاطر میگه و عبودونه او دا خلک عبادت که من دون الله به الله تعالی ما لا يضرهم حغ دهغه شان عبادت کوي که دوی ته زرر هم نشي رسوي ولا ينفعهم او دوی ته نفع هم نشي رسوي و يقلون هؤلاء شفعاءون او سات ما ديونه باندې يا شفي ما هست سگه قرآن از میشان چې با صراحت میگه از برای خدا چرا قرآن نه میخوانیم قرآن چرا نمی کنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ترک بعدی دو چیده که باید ترک کردیم کتاب الله و سنتی قرآن از و سنتم از قرآن بخوان و اون حدیث صحیح بخاری نبخون تو خدا و صنعت پیغمبر اما گپای دیگرا که, هست؟ دیگر بغیر که از گپای دیگر آب قدر زیک انسان گمراب است از این انسان هدایت نمیکنه. توی هدایت میخوای؟ ترسم نرسی با کابای عربی. این راه که تو میروی و ترکستان است. یک نفر از طرف شمال روان است تراس خود ترکستان روان است. کجا؟ کجا آمریکا؟ که ولی من خاط کردم که اجبرم. یخوای هش نیست خربن. یخو ترکستان تر می‌رس. تو خدا را عبادت میگنی و قرآن عظیم و شان برات میگه و یعبدون من دون الله خوبی ریاداش بگیرین سوره یونس آیه اجدهام قرآن آسان است برادر هر کسی که بخواه میفهمه سوره یونس علیه سلام آیت اجدهام باز کنین پند قدبارش فکر بکنین و باز عقیدت جور میشن و یعبدون من دون الله ما لا ولا ینفعهم و عبادت میکنن غیر الزات الله جل, جل جلوهی میگه، الله میگه، ما خونه مالا یا در روهم چیزای رو میکنن که برشان ضرر هم رسانده نمیتونه و لا ینفعهم و برشان نفع هم رسانده نمیتونه و یا قولونه سه که گفایشان رو چودو مگن و یا قولونه هاولای شفاؤنا میگن که یا کسی بس شفیه های ماست یا بس شفاعت ما رو میکنن عند اللهی به نزد خداوند قل اتنبعون الله به مالا یعلم و في السماوات و لا في الارض سبحانه و تعالی ما اش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 نخواهی دست دعا را برای کسی بالا نکو بر تو نفذ را رساندن نمیتند سوره یونس آیت یک تا یک سود شش هود علیه سلام برای قوم خود چی میگفت و ال عاد اخاهم هودن و بر عاد برای قوم آد خداوند مطالمه که برادرشان که هود نام داشت قالا گفت یا قومی ای قوم الله عبادت الله ها می‌کنین. ما لکم من ایله ن غیر الله تعالی دیگر کسی نیست که شایسته با باشه و اله و معبود شما باشه. سریهود آیه پنجام. برباری نوح علیه السلام خداوند بر ما خدا میگه. ولکد در صل ن نوح نلا قومیه اینی لكم نذیر مبین علا تعبودو الا الله نوح علی السلام بر قوم خود میگه الله تعبود و عبادت نکنین و مردم الا الله بغیر ذات الله جل جلاله این یا علیکم عذاب یوم الیم ما میترسم بالا شما عذاب روز دردناک ده و روز دردناک مبتلا به عذاب نشین چی کنیم که مبتلا به عذاب نشیم گفت که عبادت تان بغیر از الله برای کس دیگه نکنیم. و الی سمود اخاهم صالحا خداوند میگه برای سمود برادرشان از بین خودشان یک کس را پیغمبر برشان فرستادیم که صالح علیه سلامن قال یا قوم عبود الله گف ای مردم الله عبادت الله بکنین و الی مدینه بر مدین که فرستاد اخاهم شعیبن از بین ازی برادرشان است. قال یا قوم, قوم الله گف ای قوم عبادت الله بکنین اینال تمام پیغمبر آمد بر اقوام خود گفت که چی گفت عبادت الله ها بکنین و خلاصه تمام گفته های پیغمبر ها را خدای از و جل در یک آیه شریف بر ما خلاصه کرد که ای مسلمان در پنج وقت نماز در هر که دو که ایا که خدای خواست تو را عبادت میکنیم عبادت را به کسی دگی نمیکنیم و, ایا کنستایم و خاص از تو کمک میخوایم خواه وقتی که ای گفته که خلاص فیصله شد کل پیغمبر ها را قصه برای ما کن که گفتن ایچ پیغمبر نبود که بگه بیا من را عبادت کن ایسی پیغمبری نبود که بیایی برد که برو فلانی دوست خدا را عبادت کن ایش پیغمبر نبود, نبود که برو فلانی مردر را عبادت کن ایگ پیغمبر نبود که برو فلانی قبر فلانی قبر را در پیش قبر از او را عبادت کن گفت که الله تعالی را عبادت بکنی کجاست؟ مردم آمدن گفت هلی پیغمبر خدا او خدا دور است که صدا بکنیم یا الله یا الله بخش. یا نزدی کس حضرت جبریل علیه سلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم برای حضرت پیغمبر سلم و حضرت جبریل علیه سلم گفت که بگو برای زیاد اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب وقتی که بنده های من درباری مپرسان میکنن فا این نیمه که هستم قریب به بنده خود بسیار نزدیک هستم حتی بعض علماء چی میگن؟ میگه ببینین یک روز یک مفسر قرآن بسیار مفسر بزرگ بود یک عالم بسیار بزرگ بود من هم متوجه ده ساخت من هم این فامیدی من گفت شما دیگه آیتهای قرآن بخوان وقتی که درباره احکام است چون احکام پیغمبر باید بر از اینا برسانه چی برش گفت ویسعالونک عن المحیط ترا در باری حیث پرسار میکنه قل ای پیغمبر تو برشان بگو هو اذن که هو چیز از ویسعالونک عن الروخ ترا ای پیغمبر پرسار میکنه از روح، قل ای پیغمبر تو بگو قل الروخ من امرو اما اینجا به که ن اذا سع لک عبادی عنی فا اینی قریب در اینجا نگفت که قل ای پیغمبر بگو که ما برشور نزدیک هستم ای پیغمبر سلام تو دیگه بگو برخیر در جایت بیشی ما ببنده خود خودم نزدیک هستم مستقیما با خدای عز و جل عبادت دارم وقتی که از ما سوال کرد ما ببنده خودم نزدیک هستم چقدر نزدیک هستی خدایا اقرب علیه من حبل الوريد حبل اینه یعنی دی حبل میگن حبل در عربی اصلا چی نمیگن؟ میگن رسوان میگن ولی کن حبل الورید اینه میرسپانه رسوانه کی ورید نامش است یعنی نام شارگ گردن خداوند از که گردن بر تو نزدیک‌تر از بر ما تو نزدیک است. او تو پیش ما بگو استاد ما چطور کردم نه گناگار تو هم گناهکار ما هم گناهکار. تو هم به خدا سجده می‌کنی ما هم به خدا سجده می‌کنیم. مشکل داشتی؟ روزه به شام بخیست خودت به خدای عزوجل مستقیماً جای نماز عوار که بگو یارب یارب نه خداوند گفته که استهانت بخوای. استاد نگفته که خداوند گفته که, که یاکن استعید؟ ها گفته؟ خای استعانت تو بخوای. باز خب به قرآن رجوع کن وستعینو به صبر و صلاح استعانت بخواهین در مشکلاتتان چی کنیم؟ اول صبر بکن و صلاح دوم نماز چرا؟ نماز کت خدا گر بزن نماز کت کی گر زدن است؟ کت خدا پس برو در نماز جای نماز استعاشو که خدا مستقیما من گر بزن به خدای من این اشتباه را کردیم باز خب اینال سوال دومه که میگه ها چی؟ عبادت است که ما او را باید به با کس دیگه نکنیم. ها زیاد است. مهم‌ترین از این یکی سجده است. خداوند متعال چی میگه؟ وللله یسجد من في السماوات والارض توعا و سوره رعد آیه 15 و با الله و الله تمام علمایی که در عربی میفهمه و نحو خواندن بگه لام اینجا اینجبر چی است میگه لام لام تخصیص است حرف جر تخصیص حرف جر است برای چی برای تخصیص چی معنا تخصیص میگه به خاطر ازی که وقتی که سر یک کلمه داخل کردی میگه او را خاص برای ازی ساخت ولله یعنی خاص برای الله یز سجده میکنن منف سماواتی والارد بنده های حقیقی خداوند که در آسمان ها هستن تمام ملائکه ها که اصلا سجده به کی میکنن به الله و... و کسایی که در زمین هستن بنده های حقیقی به کی سجده میگن به الله بر از نفر که انسان ها سجده می کنن وقتی که به الله سجده می کی سجده می در زمین و در آسمان بنده های حقیقی خداوند انسان است یا جن هست جن مسلمان یا انسان مسلمان جوان مسلمان یا رشتفید مسلمان ذر مسلمان یا مرد مسلمان شاگرد مسلمان محسل مسلمان مامور مسلمان کلشان ولله یست شد سجد به الله تعالی بکن پس تو که مسلمان هستی خداوند متعال میگه شما هم سجدتانه به الله تعالی بکن لیکن باز میگه که غیر کسانی که مشرک هستن و اذا قیل لهمس جدول رحمان اما برای مشرک وقتی که بگید که برای از اینسان برای از این مخلوق برای از این انسان سجده نکن قالو امر رحمانو خدا کیست اناس جدول ما تعمرانا آیا ما بدلو تو سجده بکنیم ما که بابکلانای ما تمام روز رفتن سجده کردن به این انسانها و رو ترک بکنیم بینگ پایتر قبول بکنیم ما زادهم نفورا أنوس كوحدة واحدة توحيد. با وحدانیت خداوند، با دوری از شرک، وقتی که دعوتشان کنی، خفناش و ای مسلمان، خفناش و ای رسول خدا، خفناش و ای کسی که تو گپای قرآن بر مردم میرسانی رسانی، خفناش و ای قاری که تو آیه قرآن برشان میخونی، خفناش و ای استاد که تو استاد توحید هستی، این ها فکرتان باش که در زمان پیغمبر (ص) تا روز قیامت این ها چون حق قبول نمیکنند، وقتی که از توحید گفزید، انوز نفرتشان زیاد میشه، با فرو را که تو دفرت میکنه سر دو ساعت نام میمونه ماه گپایزش ش میزنن چرا نه میق قرآ رو بخواه سووری پرکان آیتش هستم حد, حد که یک پرنده هست ما شما فشار گفته به کلگی کل و کیخصص جا میکنه؟ با الله حود چی میگه سره یک پرنده که ما سر سرازو خنده می کنیم اگر اکس چون ببینیم سرشنامای مختلف ماندیم نی؟ هدهد هد. چی میگم وجدتوها و قومها یسجدون لیش شمس من دون الله و زینا لهم و شیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لایحتدون سوری نمال آیت 24 هدهد میعه هدهود چند دقت دیر کرد نبود حضرت ابراهیم حضرت علی... سلیمان علیه السلام چه شد هدهود هدهود آمد سلیمان. که سلیمان سایی کنین گزارشی که خبرنگار حضرت سلیمان علیه السلام کی بود هدهود برش خبر همیره پجا گم بودی سعی برفتم یک کی بود درباری بلقیس گفت میزنه. کس یک زن هست در یک منطقه پاچه هست چی کار می کنن؟ گفت وجد تو ها من این می دی یافتم و قوم ها و قوم عزیزن که بلقیس نام داره قومشام شام دیدم یس جدونه شمس. سجده با کی می آفتاب میکنن کنن بندون الله و غیر از الله الله را ترک کردم سجده با کی با آفتاب سایگو گپ گپاس برای خدا از دانش از از پرنده یاد بگیر میگه واز ير لهم الشیطان واعمالهم <تصفح> بر سلام و سلام عدت میگه میگه شیطان اعمال از اینا را بیشتر ذیلتی ساختت حالا تو شبغر از خدا که می رسای به یادام که دیگه خدا خیز میپارتی دادم و پایش خدا میپتی با این سایتی که بسیار برای شیرچه که شیطان بسیار مزین ساختن چقدر <تصفح> خوش از دیگه سایه من رفتم امروز فلان جای کمی خدا میدان و دروازه کمی انداختم قش قش کلا بس بسجا قش بس برای سجده کردم خب و کسی که تو سجده کردی سبار روز از روز قیامت او خودش وقودو هنناسو والحجاره حیزم آتش دوزخگی هست اونم او نمو انسان است که مردم میگه بیا برای ما سجده کن والحجاره باز روز قیامت میگی یا لیتنی لمتخذ فلان خلیلا باز این مشروع که بیدین در روز قیامت چی میگن دیگه چرا ندار باید میگه یا لیتنی کاش که لمتخز فلان خیلی اونوی سالمه من دوست خب نمی گرفتن. این خود لباس دوست منو تبا تبا کرد. اینجا هد چی میگن؟ وزین الله هم و شیطان و اعمال هم فسده عن السبيل پس مانی ازیه شد از چی؟ از راه درست. فهم لا یهدون و هدایت نمیشه مرد موس خدا زده ایشان چی هست خسر از حضرت سلیمان سلام بکنی پرنده جان تو زود قار نشد فهم لا یهدون نگو ان شاء تعالی ما میریم دعوتشان میکنیم و هستیم همین انسان هایی که انسان شما و مسلمان ها ببینیم سلیمان علیه السلام باز برش مخمه که نه سبیا هدایت نمیشه یاره خدا زده نگونه یعنی که میگه نه سبیا نه سبی یاره خدا زده خدا شرموندن قرآنم شرمنده شون هیچ نه در مقابل شما ایک بیده بی نکنن نه ممیم ده. نه نه نه نه عزت سلیمان این اینمی زن آتش پرسته آفتاب پرسته و اینمی قوم آفتاب پرستشا دعوت کرد خاصشانه بلشان خوب نشان داد قدرت و عظمت خداوند متعال جلال جلالهوره باز از اینها را دعوت کرد باز امین بلکیز کرد قومش چی شدن؟ مسلمان شدن از این خاطر در شرایط فیلی ما هم بعضی از مسلمان هستند که مسلمان هستند، اخلاص دارن مردم های بسیار با تقوی هستند، مردم های خوب هستند، لکن راه گم کردن اشتباه کردن ازی خاطر انسان مسلمان باید و دعوت از اینا همیشه سعی و تلاش بکنه برایش بسیار دوستانه باید که برادر عزیز دوست محترم اینی کاری که تو میکنی اینی سجده کردن به غیر ذات الله جل جلاله جایز نیست اینی آیت قرآن است این خداوند مطال جل جلو میگه که شما لطفاً به غیر از غیر از خداوند مطال و کس دیگه سجده نکنید یا ای الذین ابنا سجدت سجده عبادتی سیانه خداوند میگه سجده کنین سجده عبادت است پس وقتی که سجده عبادت شد باید عبادت بغیر از خداوند به کسی بگه نکنی رکوشی است عبادت است خداوند چی میگه رکو بکنین بمرای رکو کنین ده ها پس رکو برای کی بکنیم خدایا شما در فیلم رسالت هم دیده این نه که کلگی کل رکو میکنن برای از اون پاچای خود مسلمان ها سرایشان بلند است پاچا همه کلگی کل برای رکو کردن چون تو رکو رکده به خاطر ازی که ما میگیم که سبحان ربی العظیم با عظمت ذات الله است رکو تعظیم است و تعظیم فقط به ذات الله جل جلوه میشه بدا یک از ما رکو نمیکنیم آیت قرآن دیگه چی میگه؟ یا ایوها الذین آمنو رکعو و اسجودو و عبودو ربکم و فعلو الخیر لعلكم تفلحون ای مردم، ای مؤمنان، رکوع بکنین و سجده بکنین و عبادت بکنین فروردگارتان را و اعمال خیر بکنین لعلکم تفلحون شاید که شما مفلح و رستگار شوین سوری حج آیت 77 رکوز سجده و عبادتتان کلش به ذات الله باشن دیگه چی استعانت کمک خواستن است کمک خواستن است چی قسم کمک خواستن کمک که مشرکین عادت داشتن چی میفتن میفتن ولی خداوند بعضی وظایفه بر ازی ها دادن ما پیش از اینا یا ماموری نستن این ای مدیر هستن این مامور هستن <تصفح> پیش خداوند مطال جل جلوهو این سیستم کابینه دنیایی مدیر و رئیس و وزیر اپا است. انسان مستقیما به الله جل جلوه ارتباط میگیره از این خاطر وقتی که چیزی که مخصوص خداوند است، خدایا با ما بچه بتیم. دختر، محیر کی هست؟ محی زنده کننده کی است؟ الله. ممید کی هست؟ الله هست. پس وقتی که تو بچه میخویی بگو که خدای برای من بچه بته خدای بر دختر بته خدای بر تو اولاد بته مستقیماً به الله جل جلله برو کسی دیگه بر کس برادر نه بچه داده میتونه نه کس بر کس دختر داده میتونه کس بر کس بچه و دختر داده میتونست حضرت محمد صلی الله علیه و بچه جوان داشت خوش داشت یا نداشت خوش داشت بچه هایی که وقتی که ابراهیم وفات میکنه سرقبرش سات بشه میبینه که دفر میکنه بگه و اینا لفراق که یا ابراهیم لمحزونون بچه من فوت تو جگرخون هستم محزون هستم حزین جگرخون هستم از چشماش شرس عشق جریان دارم بچه ها فوت کرده اگر محمد صلی الله علیه وسلم میتانست برای کسی بچه به تا برای بچه به تا همون شبه که مشرکین میخواستن که ای را از خانش بکشن یک بیش دانه بچه هم در تیکر بر خود میداد خب آمد قوی قوی ابو جهل قیل میکد قشتی میز میزدش در زمین دیگه طرف خانه ما نبیی برو سهیست نی؟ چرا پیغم برسلام اگه بچه میتونست بر خود نداد؟ یک تا دختر رفته بدن سر قبر آفز و باشه که آفز مراد ما را تو بده چنان وقت کتاب آباس لدن در شعر خود گفت که دستم تهی سوار خریدار هر ششم دستم تهیست یعنی سر خاک افتاده و گفت اگه نه خریدار هر دستم <تصفيق> این حال وحفظ بیچرخ بر کس خودشش گفت که دست امتهیست خالیست است نمیتونم مردیم خلاص این حال پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دو دونموشه او از خانه خود مبرایه و میره به غار سور و وده گرد گرد غار ها که تسبای خود میگردن و او عبو بکش صدیق میگی پیغمبر خدا ای پیغمبر خدا شما حضرت ابوبکر صدیق میشناسین که ابوبکر صدیقی بود حضرت ابوبکر زندگیش ابوخلی اخلاص ابوبکر صدیق بخوانی که اگه ما تو 40 سال بزنیم و تو اخلاص پیدا کردنم میتونیم بنابراین داشت سم میخاد غار تا شب حضرت ابوبکر صبر صبر چرا 10 دقیقه صبر کو پیامبر خدا چرا تو یک دقیقه صبر کو می. دا داخل میشه چرا یه باکر در غار داخل شدیم این پیغمبر خدا بخاطر ازی در داخل شدیم که ما بپالم نشه که غار کدام شیر باشه پلنگ باشه غار گست شیر یا پلنگ یکی خانه داشته باشن شیر چوچه داده باشه کدامی غارش درایی فکر کنه کلبت چوچه موچه از بین میبری تکت تکت می کنه باون که اول مرا را بخورم باون که مرا را تکت تک کنه گرگ باشم مرا بخورم. بخونم عزت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برش عذیت نرسه یا وگرسی تیل با باز میره که الان خود پاره پاره میکنه سراخه هسته سراخه در کلش تکاها رو میمانه تکاها رو در سراخه میمانه کل سراخه رو بند میکنه پیغمبر خدا داخل میشه، پیغمبر سمتشنه، گشنه، مریض، حالتش از اونجا که کشیدن بسیار خسته است و به این حالت است حضرت اببکر صدیق چی میکنه؟ حضرت اببکر صدیق پای خدا برش مانده، پای خدا مانده سر زانوش، سرکیه سر, سر پیغمبر خداست صلی الله علیه و صلی اللہ. پیغمبر خدا چون بسیار خسته شده خوش میبره حضرت اباکس دید می‌بینه که سر زانوی زانو میخوا سر پیغمبر خداست دروچ نشه میگن یک غار است الله از این غار کدام مر نبره پیغمبر خدا را نگذن فوراً پای خدا دبی تشال میکرد دیدان غار کوری پای خدا میماند ددگوش فتکارو بند کرد دیش پای خدا میماند سر زانویش سر رسول خداست این پای قربان او که پازداری پیغمبر خدا رو بکنه بازدی کسی پای خدا اونجا میمانه قرارمون تو خدا چوب گرفته که واقعا از داخل غار ماره است یا گجدم است یا هر چیزی که است کوری پای حضرت عباقی صدیق نش میزنه عباقی صدیق پای خدا با کم گرفته و نمیخواد پیغمبر خدا بیدار شد واقعی شده سشد یک دفعه از عشق از چشمش پایمه در سر روی پیغمبر خدا میفته. حضرت پیغمبر سر چی گفت یابو بکر ای رسول خدا چی پس چرا عشقای دریخت میبینه که پایش چیزی گزیده اینالو اون مسلمان خدا رو ببین که بخاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چی میکرد جان خدا قربان میکرد و امروز ما و تو برای دین خدا چی تقدیم میکنیم این حاله سجده عبادت شد رکوع عبادت شد استعانت و کمک خواستن عبادت است از این خاطر خداوند بر ما میگه خاطر که عقیدت خراب نشه میگه در هر رکات نمازت بگو ایا که نستعین یا الله فقط از تو کمک میخوایم ایا که فقط دروغ چرا میگه در نماز میگه ایا و در بیرون از نماز میری میگه ایا که فلانی خان چرا؟ میگه سعی میکنم نماز نمیخانم. نمازم که خواندم. در کارت اولش یک نفر میگه ده یک مولوی سایب کساید گفت دو پیش آور سایب یک مقتدی اومد که مولوی سایب میگه در کارت غلط نکردی میگه مفت میگی چهار کات نماز پیش میگی می غلط کردی که چی چی غلط کردیم؟ گفتم چهار تا دوکان دارم در کارت اول ثواب دو دوکان اول میگیرم در کارت دوم ثواب دوکان دوم میگیرم امروز امروزمیگم دوکان چهارمی من با خیلی که اگر کارت آا کی نماز صیخنده؟ این نفر میگه در کات نماز خانم هیچ خدا یادم آمد. در کات نماز فرض پیشین در کات کات سنت خوانده با 4 کات فرض خوانده, کات خوانده, خوانده در کات دیگر هم صاحب سنت خونده، خدای دی یادش و خاطر ازی که خلاص خواندم یالله اکبر سلام یالله چی خلاص انس ازی خاطر ایکایی در ایاک انا عبدو و ایاک انا این یک روز هم فکر نکرده، اگادا 5 دقیقه از زندگی خود این دیگه فقط بشی پیش خودش شمایتو بگو بگی, بگی ام ای یا کن چرا خدا گفته که فقط خدایا از تو کمک میخوایم چرا ما در نماز خدا میرم میگم باشه ضرورت نداره نپیش مولوی ضرورت داری بریم پیش شایخ ضرورت داری خودت میفهمی که ایاکن استعین اون داره ترجمهش کما خدایا خالص است کمک می‌خوام آن کسی دیگه کمک کرده نمیتونه کسی دیگه کمک کرده نمیتونه و دعا دا هر خدبه اگر شما در مسجد باشین در هر خدبه عابد سمه که وقال نبی صلی الله علیه و سلم قیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت الدعا هو لعباده دعا چیست؟ عبادت است دعا عبادت است, است وقتی که دعا عبادت است پس دست دعا را به با باید بالا کنی؟ به با الله دس تا دست دعایت پیش کس دکر دعا بالا نکن خیلی سر قبرستان تیر شم چی کنم؟ سر قبرستان که تیر شدی بگو السلام علیکم او مرده ها السلام علیکم یا اهل القبور شما پیش از ما رفتین ما بعد از شما میاییم شما رفتین ما هم بعد از شما میاییم خداوند شما را ببخشم ما را ببخشم ایک کارکی میکرد رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم خلاص تو رو شور بدیم از پیشش بچه بخوایم دختر بخواهیم اگه کردی خدا خراب کدی خدا خراب کدی دل روشی جانت خودت خدا خراب بود چون خودت در پنی وقت رماز که ایا کن عبدو یعنی خدای عبادت دست دعا فقط به با تو بالا یا الله و ایا کنست و خدای از تو کومت از این خاطر برادرهای عزیز عبادت هست دعا چی هستن؟ پیغمبر سم میگه ادعا اد هو العباده آیت قرآن چی میگه؟ سوره نمل آیت 62 میگه اما یجیب المطر دعا کسی که مطر باشه مشکل داشته باشه کی دعای از اجابت میکنه خداوند میگن برای ما تو دعایت قرآن میکنه که فکر کن امی کسی که مشکل داشته باشه اجابت دعای از او کی میکنه آه. الله میکنه پس نگو به کسی دیگه نگو دعایت ابر کسی دیگه باز ازا سألک عبادی آیت 186 سوره بقره ازا سألک عبادی انی فا اینی قریب اجیب و دعوتت دای خداوند میگه من اجابت میکنم دعای دعا کننده را ازا دعانی وقتی که از من دعاها بکنه ازا دعان وقتی که از من فلیستجی بودی پس او مردم اجابت برای ما بکنین گفایی من را قبول بگید ولی امن و ایمان به من بیارین نبیرین و کس دکه ایمان بیگنبرا برقید دعا میکردن، بیگنبرا برقید دعا میکردن، بیگنبرا برقید دعا میکردن. میگه نبی ببین زکریا علیه السلام، آیا زکریا علیه السلام رف بر جدوب که او پدر کلان ما بر ما یک بچه بدهی؟ نه، خُلال کد عزکریا ربهو. میگه داد آناموچه، دعا کد زکریا، زکریا علیه السلام. برقید دعا کرد. او <تصفيق> بر پروردگار خود به الله دعا کرد <تصفيق> ربی هب لي ملادن کذ ذریه طيبه خدایا بر من ذریه بر من بچه بته که باز خداوند به اون باز ما راشان بشارت دادیم بچش کی شد یحیی علی السلام خداوند برش بشه بچه داد بکی دعا کرد به الله خداوند قسم میکنه که تو هم بچه نداری به الله رجوع بکو له دعوت الحق سای که آیت قرآن دیگه چی میگن؟ له دعوت الحق دعوت دعای حقیقی کس به الله هست و الذین یدعون من دونه و کسانی که اونا دعا میکنند دست دعا رو برازو بالا میکنند بغیر از الله جل جلوه لایست جیبون لهم بشی برشان هیچ ای چیز اجابت نمیکنه خداوان بر ما مثالش میگه مگه خیلی کسایی که فقط از الله دست دعا بردگرها بالا میکنه میگه این مثالش چی قسمه است؟ مگه این مثل کسی باست کباستن کفیه ال مثل کسی است که دست خود قسمی طرف آف گرفته که او جان بیا در دستم بیا لیبلو غفاهو چی شده که ایب تو سر خود از نوک کلو کش کم تو شر رست بیایی دا دانش ها؟ خیازی که رو خیط پای پخوام پا ظالم می پای پام نه دو سه خدا دعا گرفتم بلگدار دعامم داد بره و ما هو به با بالیگی خداوند این برام بر بر بر میگه میگه مسین انسان وارث نه دست خدنده بالا کردم اینه برایش چیز نمی آید او امد دا و ما دعاول کافرین الا فی ضلال خداوند میگه کسی که دعای خدا بغیر از نمی کنه این کافر است و ما دعاول کافرین الا فی ضلال اونم دعای کافر چی میشه بغیر از گمراهی دیگه هیچ چیز برایش پیدا نمیشه فایده خناکر نفس شجعت که از ایمان برامد به کفر رجوع کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام چی میگه میگه الحمدلله الذی وهب لی على الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدو حضرت ابراهیم علیه السلام میگه خود شکر خدای را که بر ما اسماعیل و اسحاق علیه السلام در وقتی که ما پیر بودم بر ایاره داد و کی سمیع و داست که دوارمشنوا ربی خدای من الله جل جلاله ربی جعلن مقیمت صلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا پروردگار تو دعایی ما را قبول بکنی هیچ پیغمبر نیست و برادر در قرآن عظیمشان که بغیر از الله جل جلاله دست دعا را به هیچ کسی بلند کرده باشه دیگه بغیر از دعا چی توکل است؟ توکل کردن انسان مؤمن آیت قرآن چی میگن؟ برای پیغمبر صلی الله بگو قل هو الرحمن و نابیه و علیه توکلنا سوری ملک قل بگو هو الرحمن ذات رحمان کس به او ایمان آوردیم و بالای توکل میکنیم با غیر از به هیچ کس دیگه توکل نمیکنم دیگه خودشان در جان خود هستن رب المشرق والمغرب إله إلا هو فتخذه وكيلا ميجا تو الى وكيلت دگيد وكيل کی بگی؟ الله بگی توکل به کی بگو؟ به الله بگو فعبده و توکل علیه سورهود است که اینجاست که خداوند متحال جل جل, جل, جل, جل برای ما بشمار توفیق بده. خلاصه کل درس این میشه که عزیز عبادت در قرآن عزیزیم و شان و تمام پیغمبران عبادت فقط خدای عزو پیغمبران و قرآن عزیزیم و شان دعا گفته؟ عبادت الله کی گفته؟ به ذات الله جل جل, جل, جل. و سجده رو دعا استعانت خواستن توکل کردن کلی چیزا در جمله عبادت هستن پس ایر ما یک مسلمان باید برکی بکنن با ذات الله جل جلاله بکنن که اگر به غیر از خداوند و کلمه لا اله الا الله این معنی است لا اله نیست هیچ کس قابل عبادت نیست نفیه نیست هیچ پیغمبر نیست هیچ ملایکه نیست هیچ دوست خدا نیست هیچ دشمن خدا نیست هیچ ولی خدا نیست هیچ سنگ نیست هیچ چوب نیست هیچ کس قابل عبادت کلش نفیه الهه نیست کسی قابل الا الله با غیر ذات الله جل جلاله این می راه می خلاصی کلمی خلاصه کلمه لا اله الا الله است که اگر ما مانای کلمه لا اله الا الله درست نفهمیم و در زندگی 24 ساعت خود لا اله الا الله را تطبیق نکنیم باز لا اله الا الله خانه اگر روز دو ساعت مدوام با زبان بگویم وقتی که عملا در وجود انسان تطبیق نشد باز تاثیر ندارد سبحان ربیک رب العزه عما یسئون و الله علی المرسلين الحمد لله رب العالمین in la نجا برداری و چیز میکنه یک جوان مسلمان بسیار خوب از پدرش در روزی در رفتیم بر ما دعا هم کرد. ما برش دعا کردیم بلکه انسان است وقتی که وقتش پله شود دیگه به خداوند متعال جل جلاله جل دعا میکردیم که خداوند او را مغفرت بکنه جنازی از امروز بردن به موطنشان اللهم احینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و سفیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللهم من احییتهم النا فاحیا على الاسلام ومن توفیتهم النا فتوفه على الای دوستا مسلمان, کسای هستن بعضی از اه, کسای هستن که از خارج آمدن در افغانستان و بعضشان پینجا فیصد علاقه اسلام شدن و بعضشان مسلمان هستن بعضشان خدا را قبول کردن میگن معدمی اوزو نماز یک دارم مشکل دارم ما شما برشان دعا میکنیم خداوندی کسان که مطالعه میکنن و با اخلاص قرآن مطالعه میکنن و با اخلاص دین اسلام مطالعه میکنن و از جمله از کسایی نیستن که تعصب دارن بر از هم دعا میکنیم که خداوند مطال جل جلاله اونا رو هدایت بکنه و خداوند ما و شما را وسیله هدایت بر از هم بگردونه ما را توفیق بده که ما همت دلایل بر از گفته بتونیم و قرآن را به شکل اصلی و حقیقیش بر از بیان بکنیم تا که اونا هم که علاقه‌مند ازی هستند که مسلمان شوند مسلمان میشن چون زیاد کسا هستند که سر این مسائل فکر میکنن و انو هم دلت شوش ما و شما مییم خدای دیگه ما خو حاجت استیم و قدر توانایی هم نداریم پروردگارا هدایت کار توست از ما فقط رساندن حق است پروردگارا خدایا هر کسی که با اخلاص قرآن می و واشون در قرآن گفته که ذالک ای کتاب کتابی چی است کتاب طب و انجینری و فلسفه نیست کتابی چی است کتاب هدایت است و هدایت برای بر است که خود از تعصب قایم میکنه خدایا برای کسایی که خود از تعصب قایم میکنن اگر چیدخانی غیری مسلمانا پیدا شده خدای آنها را تو هدایت کنی که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم بگوئن و مطابق ذوالعمل بود